او همی رفت و من به دنبالش بنده زلف و هندوی خالش تا رسیدم به بارگاهی چو، در نشد تا مرا نبرد نخورد چون در آن قص تنگبار شدین چون بموزیر و سازگار دیدم افکنده بر بساط بلند خوابگاهی ز پرنیان و پرند شمعهای بسات بزم مفروز. همه ساز و انبرسوز سر به بالین بستر آوردین هر دو برها به بر در بیم هر دو برها به بر در بیم یافتم خرمنی چو گل در بی نازک و نرم و گرم و سرخ و سپید صدفی مهر رو بسته بردر او مهر برد برداشتم ز گوهر او بود تا وقت روز در بر من پرز کافور و مشت بستر من گاه روزو چو بخت من برخواست گاه روز. گاه روز او وقت من برخواست ساز گرم کرد یک یک راست غوثگاه هم به آبدانی کرد که گوهر سرخ بود و از زر در خیشتن را به آب گل شستم در کلاه و کمر چو گل رستم آمدم زن نشاتگاه برون بود یک یک ستاره برگردون در خزیدم به گوشه خالی فرض ایزد گذاردم حالی آن عروسان و لعبتان سرای همه رفتند و کس به بجای من بر آن سبزه مونده چون گل زر بر لب مرغ زار و چشمه سر سر نهادم خمار می در سر بر گل خشک با کلاله تر خفتم از وقت صبح تا گه شام بخت بیدار و خاجه خفته به آهوی شب چو گشت ناپگوشان تا شد شو چه سای سر برآوردم از اماری خواب بنشستم چو سبزه بر لب آب آمدن ابر و باد چون شب دوش این درفشان دو و اون عبیر فروش باد میرفت و ابر میپشان این سمن کاشت وان باد میرفت و ابر این سمن کاشت وان بنفشه نشان چون شدن مرغ زار انبر آب گل سرنهاد جوی به جوی لعبتان آمدند اشرت ساز آسمان باز گشت، لعبت باز تختی از تخته زر آوردند تخت پوشی ز گوهر آوردند چون شد انگیخته سریر بلند بسته شد بر سرش بسات پرند بزمیاراستند سلطانی زیبر بعد جمله نورانی شور و از جهان برخاست آمدند جماعت از چپوراست در میان آن عروس یغمایی برده از آشقان شکیبایی بر سر تخت شد قرار گرفت تخت از او رنگ نوبهار خب ارز کنم چیز این دویعه علم ما نیست اینجا آنشب ناصف دستگان نجاتا حال نداری بیچاره دوست ما هم کنن چرا؟ بله فره بل چیزی انشالله حالش خوبه بله ارز کنم که میگه که گفتش که برای کسی به خواستی و میشه میگه دختی داد به دست منو رفتم او هم من به دنبالش بنده ی و هندوی خال. عرض کردم که هندو به معنی پسترین نوع غلام و کنیزه برای این ها خنگ بودند یه ذره دستشونم کج بود هندی ها خیلی از این لحاظ گرفتاری داشتن و خلاصه غلام و کنیزه خیلی ارزون بودن. اینی که میگه من هندو خوال اوودم در اینار هال خوال سیاهه، سیاهن یعنی به عنوان پسترین غلام بنده زلپ و هندوی خالص. در ضمن کلمه بندرم ارز کنم که قسمت اولش همون بنده بنده یعنی بندی کسی که بنده کسی باشه، بنده یعنی کسی که در بند ملکیت کسی میگذید تا به بارگاه چه در نشد تا مرا مبورد نخست خانم خیلی مهدب بوده و اهل اتیکت و آداب و ترتیب دیگه اول منو فرستاد تو بعد خودش آمد تو در شدن یعنی تو رفتن در نشد تا مرا نبه چون در هم قصر تنگ بار شدیم جای خیلی چیزی باید باشه دیگه وقتی که به سال هست دیگه, دیگه به قصر درندشت احتیاج این که جای کوچیکی باید باشه که مخلابه به باشه و عرض کنم که در خور دو نفر که ثبومی در اونجا نگنجه همینطور هم بودیم میگه چون در آن قصر تنگ باغ شدیم چون بموزیر سازداب شدیم دید مفکنده بر پساط بلند نشان این است که به روش امروز تخت ترتیب داده بودن بالا بساتم از بس بس یعنی پوستردان بنابراین بسات یعنی چیزی که پن می‌کنه من می‌گسام افکنده بر بسات بلند خوابگاهی ز پرنیان و پرند پرنیان و پرند هر دو یکی یعنی هر ایش شام اولی بسات بس مفروز همه ساز و انبرسوز ساز یعنی ساخت شهمدونشون نشان بود و انبرسوز بود قبلا عرض کردند که داخل شهم های هیونی مومی بود و داخل موم مواد عطری مختلف میذاشتن برای اینکه وقتی میزوزه بوی خوش به پراکنه این شهم ها انبرین بوده انبرسوز سر به بالین بستر آوردیم. بالی نبستر میگه. بال، بال یعنی دست. و بال کبوترم هم که میگن، همون دسته. و الانم میگیم که دست و بال من بسته است. و کاشیا اصلا مطلقا دست نمیگن، میگن بال. بال اینکه به بال بریده قمر و آشم این همچین این دست بال نمی یعنی دست بالین با یه عنون نسبت نمیدونم شما این عادت دارین یا نه من و که بالشم میذارم زیر سرم اینه میکشم به برشم باشی باشی باشی اینه میکشم زیر شومم اینجا این اونطور میذارم روش یعنی جایست که بال روش تکیه میکنه دست روی اون بالین تکیه میکنه به این دلیل میشه بالین اما بستر بستر از ریشه گستردنه گستردن یعنی پنج کردن این در پهلدی در پهلبی هست 20 در این ویای آغازین در عوستایی و در پهلوی در زبان فارسی تبدیل میشه به گ. ویناس در پهلوی در فارسی میشه گناه ویستر میشه گستردن وگزاهی به بیه و اکسور تبدیل میشه گنجشک که اتمن لغتش در طالبی که الان نداریم جایی داریم بنده سوادم نمیرسه همین اولش با بی شروع میشه در فارس شده در بعضی لحجه هست یا مثلا برنج خوراکی رو که پلو میبزن در بعضی لحجه هست گرنج و برنج هر دو یکی بنابراین بستر و گستردنم هر دو یکی بستر یعنی چیز گستردن چیزی که پنج پس بالین میشه جایی که دست آدم قرار میگیره بستر هم اونجایی که آدم پنج سر،, سر به بالین بستر آورد یعنی سرمون رو گذاشتیم اونجایی که جای دست است و جای هر دو برها به بر در آورد بر درست است که وقتی آدمی کسی رو بغل میکنه دو نفر همیگر بغل میکنن اونجاهایی که از قسمت بالا با هم تماس پیدا میکنه اون رو میکن بر یعنی همدیگر رو در آغوش ده. بر... در بر بار گرفتن یعنی در آغوش گرفتن هر دو برها به بر برابر دید. یافتم خرمنی چو گل در بيد اقبالی کی نظامیم استاد توصیف این زیبایی هاست به صورتی که از حدود توصیف ادبی پاکیزه خارج نشه و هر زنگاری نداره بیشتر ایروتیزمه یعنی شرح ظریف و لطیف این چیز هست که یافتم خرمنی تو گل در بید نازف و نرم و گرم و سرخ و سفید صدفی مهربسته بردر او میدونید که صدف حیبونه حیبونی دریاییست و لابود میدونید که حالا هست. هست همه دست همه میخورن حتی میدونید که باز کردن صدف کار آسونی نیست و با وسایل مکانیکی و با فشار بعد هم اون وقتایی که سیادان موروارید میامدن و صدف میوردن بالا کارت به کمرشون بود همونجا اینو و یعنی اون حیبونه اون تو میتونه صور این لبه های صدفی هم بیاره که به بهش باز نشه باید با اعمال فشار اینو باز کنه است که صدف همیشه دو تا هست و همیشه مهر کرده این درش بسته است صدفی مهر بسته بردر او مهر برداشتم ز گوپر او آه. یعنی صدف باز کنه. ارز کنم که گفتن که اینجا بگم اینو چون نمیشه نگم گفت یه مردی رفته زنی گرفت دختر یه رئیس رو گرفت چیزی رو گرفت بعد شب که رفت که خانوم دوشیزه نیست بر مهر دوشیزگی نیست صبح آمد گفتش که آ این کی بود به مدنی؟ با کی بود چی؟ گفت این دختر نیست گفت یعنی پسره <تصفيق> گفت نه آقا چرا توجه نمی ببخشید خیلی عذر می خوام محصودم اینه یعنی که فلان داده گفت که عجب پس می خواستی او یکی رو بده باز ایندید دید نشون تو آجون چرا توجه نمی میگم می اون مهری که خداوند تبارک و تعالی میکنه خودش به ید خدمت خودش اون مهر شکسته از اون مهر برداشتی گفت این اول بگو خداوند تبارک و به قوم قبیلی ما اعتماد داری مهرش مهرشون نمیکنیم بله گفت صدفی مهر بسته داره او مهر برداشتم گفت هر او دیگه بیشتر نمیاد نظامی وقتی که معشوق های خیلی جا سنگین و درجه یک رو میخواد بحث کنه در باب شب زفافشون یا هماغوشیشون و چیز خیلی مثلا فرض که شب داستان زفاف خود روشیدین خیلی خیلی مفصله با, با شهرهای بسیار بسیار زیبا و دلپذیر و در این حال خالی از خشونت و زشتی یا در اسکندرنامه یه داستانی داره داستانه پشرت کردن اسکندر با کنیزک کی بعد چیز به سال اینا رو میگه میگه که من دوسته به ببین میخوانم بگیم زیباست میگه به بردر گرفتان سمنسینه را در مهر برداشت گنجینه را نخورده میدید روشنگو با یکی باق در بسته پرسیب و نار. نچیده گلی، خار برچیده ای به جز باغبان، مرد، ناو ای همطور ادامه میده میره پر خیلی توصیبهای زیبا ولی اینجا دیگه برای یه خانوم که یه شفه و فردا عروس نوه میخواد بیاد دیگه میشه از این نواد که سر کنه صدفی مهر بسته بردار او مهر برداشتم زی گوهر او بود تا وقت روز در بر من فرز کاخوه و ماشک به من میدونید که کافور چیگه درخت یه درخت گرم سیریست که میارن و بوی خوشگاه <تصفيق> روز او چوبخت من برخواست ساز گرمابه کرد یک سنگ پوکی سموم رو کنم که قلیفه و لنگ رو پس داد رو حاضر کرد و اینجا گرمابه رو باید خدمتون بگم که این آبه هیچ نفتی آب نداره آب یعنی گمبت آب یعنی گمبت ساوه بوده سه آبه یعنی سه تو گمبت شهر سه, گمبت. سه گمبتان یا آوچ سر رای همه دون آوه یعنی گمبت اماراتی داشته که گمبتش مشخص گرم یعنی بنای گمبتی شکلی که توش گرمه نه اینکه آب گرم توش هست خیل بنای گمبتی شکل گرم تازه گرما بکردی که که که هاست؟ گسلگاه هم عسل یعنی بعضی لغت ها هست که ما به کلی اصلا معنی شد یه جور دیگه شده گسل یعنی شستشوه گسل یعنی شستشوه بعد این در علم فقه در اصطلاح فقه اسلامی به نوعی شستشوی مخصوص با آداب و ترتیب مخصوص اطلاق شده با اله قوسیگاه اصل... هم کاشم پسنده مکانه قوسیگاه هم به آبدانی کرد که از گوهر سرخ از در زر میگه جایی بود حضینه بود حالا بعد اینا همین نافدید میشه نا نمیم چیز... چیز پریان و ایناست میگه رفتم حضینهی که طلا داشت چیه بود و بود و اینا ولی بعد بعد چند روز می رو سبزه گرفته خوابی دید هم به آبدانی کرد که از گوهر سرخ بود و. از زر پیشتم را به آق گل رستم در کلاه و کمر چو گل رستم آمد امزان نشاطگاه برون بود یکی یک ستاره بر گردون یعنی صد داشت می دیگه ستاره در آسمان کم دیدم چنین روچندترین ستاره ها فقط خزیدم به گوشه ای خالی فرض ایزد زد داردم حالی نمازش یادش نمیاد، پایین با این که شراب مفصل شب پرده بود و عرض کنم که عشق کرده بود و مفصلن و می و خمار می در سر داشتم اما بلطوره نمازش در خزیدم به گوشه ای خالی فرض ایزت گذاردم حالی آن عروسان و لعبتان سرای همه رفتند و کس نام به جا لعبت اصلا به معنی عروسه و لعبت باز چون لعب یعنی باز لعبت یعنی بازی که به شکل عروسه خیم شب بازی رو بهش میگن لعبت باز ما لعبت مفلک و لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز که مال خیام یک چند بر این به سات بازی کردیم رفتیم به صندوق عدم یک باز عروسکای خیم شعب بازی میگه و لعبت بازم اون شفت منسجی خیم شفه. لؤبات معنی عروسکی ولی معنی زن خوشگلم طعن است دیگه حتی خانمای خوشگل اسمشون لؤبات هم میذارن لؤبات قانون لؤبات خانم, لعبت خانم. خانم لعبت بالا شاعری بود گویا در روزگار جوانی آوان در داشت روسنداش کنم تو آن عروسان و لؤباتان و سرای همه رفتند رو کس نمان. به جای من بر آن سبزه مانده چون گل زرد بر لب مرغزار و چشمه سر من اونجا بودم تنها و سرنهادم قمار می در سر بر گل خوش با کلاله تر کلاله یعنی کاکل با قسمت جلوی مو نسین در سر گل بشکند کلاله سمن تو از میان چمن یا آن کلاله برآ تو آفتاب می از مشرق پیاب برآ بیاد باغ آرز صادق از آل میگه نسیم کاکل سنبول روی سر گل میشکنه وقتی که بوی زلف یار بلند نسیم در سر گل بشکند پلاغله سنبول چو در میاغم چمن بوی آن پلاوله برا ز گرد خواهم نگوم پلک تمع نتوانداشت که بی صد صدقصه یک نباوله برا از چون نوح نبی صبر هست در غم علاو بغرد کام هزار ساله فرا تکاویت شبه هجران نهانت حکایت حال است که شمیز ز بیانش به صد رساله برد سر نهادم خمار می در سر بر دور خشک با کلامه تر خوبم از وقت صبح تا جه شام بمی چغرت خشن باخت دیدار و هاجه هفته رو شب چو گشت نافگشای یه نسیم. اولا نمیدونم میدونید یا نه که بسیاری از گول ها عطرشون در شب پرکن با یه شب بود که بجا. یه گولی من سراخ دارم که اصلا در پاکستان اینا بود اینجا گاهی دیده میشه به نام محبوبه شب گول ریزی داره و عطر بسیار شدیدی که تا صد متر این بوی این مسکی اونطور میزنه بیرون هی هر چند لحظه یک بار این ترشتوه قیل چیز میکنه این اطر اطر اج اینو در هندوستان و پاکستان ها بهش میگن رات کی رانی رانی یعنی ملکه رات هم یعنی شب رات کی رانی یعنی ملکه شب که در فارسی ترجمه کردن محروبه شب حال، بسیاری گولا شب اطرشون پخشمشه و روز اصلا عج نداره اینی که میگه که آهوی شب نافگوشا شد یعنی بوی خوش پراکند آهو شب تو گشت ناهو گوشای صدفی شد سفهر قاوی سای جان بله هر دوش هست دو این آهو که در سنسکریت هست آس و این در فارسی آهو این آش جوز کلمه هست و اسم اون حیبونه و همون آهوه اون آهوی بمنیه که در شاهنامه آمده فقط در شاهنامه هم میز در جاهای دیگر هم هست در خاقانی هم هست مرکب از آیه نفی ای در, در پهلوی هست در, در فارسی نیست ا به معنی منفی داره اهو یعنی ناخوب اهو, اهو یعنی ناخوب که بعضی برشن هم مرداد و مرداد ما هم مرداد در فارسی مرداد بوده از دور قبل سعدی و دیگرون رو همه از قدیمیم سعیدی میگه که قله مرداد محدود کرد و تیمار رو خاطر خاطراست مرحوم ارباب رو زردشتی که وکیل مجلس بود و کارپرداز مجلس بود و یک قاضی گفری یاد بلد بود نه در حد علمی در حد همون مسائل دینی زردشتیان به نظرش رسیده بود که این مرداد در اوستایی عمر اسم فرشته ایه عمر اتات یعنی نمردنی اون اش عینات امرتات یعنی نمردنی در فارسی این عیه ای نفت اصلا نیامده هیچ بنابراین امرتات در فارسی ده مرداد عرب که خود رو فکر که مرداد که خیلی بده آخون فرشت مرداد یعنی مردنی چون کارپرداز مجلس بود و مئلس یه تقویمی هر سال چاپ میکرد برای اولین بار او برداشت اون ماه و اسمشو گذاشت امرداد پچه همینجور پشت دارم هم. حالا یه میدیستن امرداد اقا امرداد تو پارسی والا نداریم به خیره بگم برای بعد هم ایران رو گذاشتن ان ایران ان ایران داریم ایران هم داریم اما ندار پارسی در پارسی ان ایران نداریم اینا جان؟ احتمالاً احتمالاً احتمال احتمال بله. به هر حال یه عی نفی داریم این زبانای دورقایی هم همه با هم چیز اند دورقایی این عی ای نفی در فارسی نمیاد اهو یعنی ناخوب این آهو هم که آخرم ایران یعنی جزی ایران و غیره ایران. ایران و جزی من نمیدونم در پهلوی ممکنه درست باشه در فارسی درست نیست حتی استاد عزیز من خدا رحمتش کنه مرحوم غریب معروف بود بین شاگرداش بود جناب بیزا میزادالدین خان غریب اول اون دستورای ابتداییش نوشته بود که حرفا در فارسی یا حرکت دارن در این صورت او رو متحرک یا جنبان میگن، جنبان حالا بر متحرک و اگر حرکت نداشته باشن اونها رو ساکن یا اجنبان میکن <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اینا زایی بود که خب اون اول آدم احساسات دیر میگنی دارو فکر کن چقدر خوب همونم فلانو خب البته خوبم هست اما به خلاف قاعده که آخر نمیشه را بیافته که این پاید حسابی داره کتابی داره این از هزار سال پیش مرداد بشه باید تو شعر و نصر و همه چیز می که نمیشه همه را به هم به کرد اه مرداد نمیشه اون اه این اه نیست آخر ده جور اه داریم پرسند بر. یکی از اه معنی نفت شما هر کلمه ای رو در هر زبانی که بگیرید یکی دوته معنیش معنی رایجه که همه بلد هم. باقی ما معنیش بلد نیستم باید بریم تو فرهنگی را کنیم خود شما برای صرف میپرسند گفتن دیگه از گفتن که لغاتی آسان تر که ندیریم یه معنی گفتن آواز خونده شما صد سال در زبون پارسی حرف بزنین در مم خودتون یک بار ممکنهیه ج گفتن رو آواز خوندن به کار ببرن یا از کسی بشه اینو باید بیان سر کلاس ادبیات یاد یه معنی دیگه گفتن معتقد بودن میگه گروهی به جبر گویند و گروهی به تفیز یعنی بعضی معتقد به جبرن بعضی معتقد به تفیضن این معنی در هفت هدا که به کار بمیره معنی ادبیس و سر کلاس یاد همه ع بدون استاب همین ترتیب به این شاید شاید بیست تا معنی برای کلمه آب آورده یه جور و جور فرنگ ما این است این که این هم, هم طور ایه جور که نیست چندین جوره اگر قرار بشه این باشه خب هم آهو که اول گفتیم اون دونه ور اون نواد هست خب دیگه چیز ریشه شناسی بسته. <تصفيق> آهوی شب شبت رو گشت نافه گوشای به نافه مفصل هر سدن و نافه گوشایی و این هم صدفی شد سفهر غالی سای یعنی کم کم شروع کرده اینکه یعنی رنگش سیر بشه سر براوردم از اماعی خواب از تخت روون خواب این اماعی خواب اضافه تشبیحیه یعنی من مثل این بود که توی تخت روونی به ناز خوابیدم سر برآوردم از اماری خواب بنشستم تو سبزه بر لب آب آمدن ابروباد دو. آن درفشان دو و عب این عویر خورد این صنعتی درش که بشنیدن لفت کنشت مرتب لفت یعنی بستن لفت یعنی چیزی که جن... چیز رو دادن توش می‌بنده لفت یعنی بستن مشت یعنی بازگردن یعنی یه دور می‌بندن یه دور ما میگه لفت کنشت لفت کنشت مرتبان دادن که دو لفت آوران دو دو معنی لفت اول به معنی اول لفت ثانی به معنی ثانی نمونه این که خیلی می آوردن در کتاب های مقدماتی ادب. اون ثبت فردوسی بود دو بیت به روز نواردان یل ارجمن به شمشیر و خنجر به گرز و کمن برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست یعنی به شمشیر برید سر یلان به خنجر درید سینه یلان به گرز شکست پای یلان را بکمند بست دست یلان این نمونه کامل لفت آمدان ابر و باد چون شب دوش این در و آن حبیر خروب باد می رفت و ابر می افشان می رفت جارون کرد باد می رفت و ابر می افشان این سمن کار من فنفشه نشان یعنی بوی خوش نمی جا چون شدان مرزار انبر بوی آب گل سرنه ها جوی به جوی یعنی آب معتر توی جوی بار راه افتاد لعبتان آمدند اشتف ساز لعبت رفتن من زن خوشگله هست اینجا لعبت منی زن سی باز لعبتان آمدند اشتف ساز آسمان گشت باز لعبت باز اینجا آسمان دیگه لعبت بازه یعنی همون بازی نمایش خودش شروع کرد تایم آسمان شروع به نمایش کرد. آسمان بازگرشت لوبت با تختی از تخته زر آخر تخت خوشی زگوپر چون شد انگیشد سریر بلند بسته شد بر سرش به ساوت پرند بزنی آراختن سلطانی بزن سلطانی یعنی مجلس شاهان دیبر بست جمله نوگان و آشوبی از جهان برخواست با زیبا رئیس بانوان داره میاد و خب خونشو خونشو در صدا شور آشوبی از جهان برخواست آمدندان جماعت از چکرا. در میان آن عروس یک برد برده از آشغان شکی باوی بر سر تخت شد قرار گره از اون رنگ نو ها اینجا دو تا کلمه رو واسه بگم یکی یغما یغما به معنی قاره‌ای که شنیدید اون مطلبی نیست که من اینجا برشم. در فرضن یغما اسم یکی از شهرهای خوسن شهرهایی که معمولا غلاموتنداش می آوردن و معمولا اینا معمولا در قسمت‌های جنوبی چین بود البته از جاهای دیگه هم می آوردن به هم اونجاها اوندهام هست مثل هند که گفتم که ارزم غلام و کنیز را میوردن مثل زنگبار که سیاه ها میوردن مثل روم سقلاف بلغار اینا بود اما بیشتر شهرهای چین بود که خود چین هم خیال میکردم که شهر چین بود خطا بود میخواد یادداشت کنید این شهرها اسمش چین بود خطا بود کتن بود کلخ بود ترخیز بود حسار بود خمار بود یاقما بود، کشمیر بود، سقلاب بود که صورت, صورت عربی شده کلمه اسلاوه برانی روسیه، سقلاب،, سقلاب بود، بلغار بود یه ساختمونی بود، ساختمون بسیار زیبای افثانهی به نام نوشاد روش نقش های خیلی زیبا داشت، ولی بعدها خیال میکردن که نوشاد مثل یه شهریز برای اینکه لو لعبت نوشاد یا نوشاد یعنی زن خوشگل که شبیه اون تصویرهای نوشاده برحال نوشاد هم جزء محله حسکتیز هست باز هم هست که حالا الان در ذهن من نیست یقما یکیش آمد درمیان آن عروس یقمایی یعنی اهل شهر یه. در درمیان آن عروس یغمایی برده از آشغان شکیبایی بر سر تخت شد قرار گرفت تخت از او رنگ نو بحار گرفت نو بحارم با توضیح خدمتون بده برای اینکه بهار سه تا معنی دارید یکیش همون فصل که لازم توضیح نیست یکی معنی شکوفه که هنوزن به کار میره شکوفه درخته در مرکباتو حتما میگن بهار کرد یعنی مثل نارنج باهار کرده بجرد باهار نارنج هم شکوفه نارنج یکی هم شکوفه است و یکی دیگه یک کلمه است که هیچ ربطی به این باار نداره بلکه پسرخاله کلمه بخاراست بخارا این در پهلوی بوده ویهاره ویهاره از یه طرف شده بخارا از یه طرف شده باهار اسم محل و معبد بودایی رو بهش می گفتن باهار و نوبه و بودایی ها عادت داشتند که محابد شما به انواع و اقسام زینت ها آرایش بدن گل و گیاه و وساط و مجسم های مختلف بودا و خیلی آراسته بود و معروف تلینشون نوبهار بلخه در شاهنامه میگه که لورانس برخته بود برای عبادت و نوبهار بلخ و در اونجا بعد پشتش ارز کنم که این معوت ها چون آراسته بود خیلی اینکه میگه تخت از اون رنگ نغبهار گرفت یعنی وقتی اون زنه و اون زیبایی آمد این تخت نشست این تخت مثل نغبهار مثل نغبهار برخ مثل معبدای های بودایی آراسته بر سر تخت شد قرار گرفت تخت از اون رنگ نوبهار خب یه مقداری به بخون بخون. باز فرمود مرا جستم نامم از لوح قایبان شستم رفتم و بر سریر خوندندم هم به آین خود نشوندندم هم به ترتیب و ساز روز دیگر هم بازه. به ترتیب و ساز روز دیگر خون نهادند و خوردها بر سر هر عبایی که در خورد به بساد و در خورنده رنگ نشاد ساختند آن چنان که باید ساخت چون که هر کس از آن خورش پردا. از آن خورش پردا. می نهادند و چنگ می نهادند می ساخته شد از زدن رودها نواخته شد نوش ساقی جام نوش گوار گرم تر کرد عشق را بازار در سر آمد نشاط سرمستی عشق باباده کرد همدستی پر که من رحمت آشکارا کرد اندوی خیش را مدارا کرد رقبت افزول در نواختنم مهربان شد به کار ساختنم به کار ساختنم. ساختنم کرد شکلی به غمزه یاران تا شدند از برش پرستاران خلوتی چنا و یاری نه، تا و از دل در افتاد به مد دست بردم چو در کمرش در کشیدم چو عاشقان ببرش گفتان وقت بیقراری نیست شب شب زین هار خاری نیست گر قناعت کنی به شکر و غند گاز میگیر و بوسه در میبند به قناعت کسی که شاد بود تا بود محتشم نهاد بود بم که با آرزو کند خیشی افتد عاقبت به درویشی گفتمش چاره کن ز بحر خدای کاو از سر گذشت و خار از فال هست زنجیر ظلف چون دیرت من هست زنجیر ذلف چون دیرت من ز دیوانگان در درب زنجیر کنترا گفتم تا چو زنجیران نیاشوفتم شب آخر رسید و صبح دمی سخن ما به آخری نرسید گرکشی جانم از تو نیست درید اینک اینک سر آنک آنک تیر این همه سرکشیدن از به چیز گل نخندید تا هوا نگرید جوی آبی و آب جویت من خاکی و آب دست شویت من ای را که او گلوده توز آب درده که آب در ده توست ندهی آب من بقای تو باد آب من نیست خاک پای تو باد خاکی را بگیر کابی بو آب جویی در آب جویی مرد آب... خا... خاکی را بگیر بگیر یعنی فرض کن خاکی را بگیر, بگیر کابی بو آب جویی آب جوی... آب جویی در آب جویی مرد آب, آب جویی در آفجوگی مرد را به تشنگی مگذار تشنگی را به غطره ای بنواز مگوداست مگو رتبی در فتاده به بشیر سوزنی رفته در میان حریر فی روز زیادم هست باید. گرجوزین است گرجوزین است کار تاخیزم خاک در چشم آرزو ریزم مرغی انگاشتم نشست و پرید نه خر افتاده شد نه خیک داری پاسخم داد شبی خوش باش نعل علشبیز گودر آتش باش خش باش نه علشبیز گودر آتش باش گرشبیز این خیال گردی دور یا از شم جاودانی نور چشمه ای را به غطره ای مفروش که این همه نیش دارد آن همه نوش در خود بر یک آرزو در بند همه ساله به خرمی میخند بوسه میگیر و زول میانداز نرد رو با کنیزکان میباز باغدار باغداری به ترک زاغ بگو مرغ با تو شیر مرغ مجون کام دل هست و کامرانی هست در خیانتگری, در خیانتگری چه آریده است امشبی با شکیب ساز و مکون دل به نهبر وظیفه شب دوش من از این پایه چون به زیرایم هم به دست آیم ارچه بیر این تم اصلی قضیه است اصلا داستان این است که دعوت میکنه طرف رو به صبر و همه اهل اون شهر رو همجور دعوت کرده یک شب دفم، یکی شب سبم، یکی شب پنجم، یکی شب دهم، یکی شب ویستم بالاخره انان تاقه شد بس رفته و رفته تو سبر حالا این یکی از اون میگه که آمدم شب دفم طرفم هم راه میدهه در این حال میگه که سبون باشه تو چیز میگه باز فرمود تا مرا جست. جستن یعنی تجسس کردن و پیدا کردن نیافتن چون بعضی اوقات میگیم که مثلا یه برون جستن یعنی پیدا کرد اینجا جستن یعنی جستجو کرد باز فرمود تا مرا جستن نامم از لوح غایبان شستن رفتم و برسریر خاندن دارم هم به آین خود نشاندن هم به ترتیب، ترتیب و ساز روزدگر خان نهادند و خوردها بر سر اینا رو میبیند که نظامی که سرای بسیار چیز دستیه دوباره اثرش شروع نمیکنه که این خوراک چه چجوری بود اون یکی این برنجش چجوری بود یه دفع رو گفته قبلا همون هنرش همونجور به کار برده دفعه بعد میگه که همونجوری بود که گیشت برده این خود در اصطلاحی بی‌معنی نمی‌فهم. هر ابای ابا و با یعنی آش. الان به صورت شوربا داریم یعنی آش که چاشنی فقط نمک شوربا. ولی در قبی جوجه با یعنی آش جوجه. تک با یعنی آش سرکه زیره با یعنی آش زیره و شاید موارد دیگری اینا در عدب فارسی هست با و ابا یعنی آش و سنائی در اون قصیده جواب و بی نظیرش مکن در جسم و جان منزل که این دو نست و آن بالا قدم زین هر دو بیگونه نه, نه اینجا باه نه آنجا سخن که از بحر حق بوی چه ابرامی چه سوریانی مکان که از بهره حق چه جا چه جا برسا توی اون قصیده میگه که گرد ازدت همی باید به سهرانی قناعت شد که آنجا باق در خاندر خان و با در بخ اونه آش آشان است هر عبایی که در خورد به آشایی که مناسب اون صفر بود داورد در خورنده رنگ نشات ساختند آنچانون که باید ساخت یه همه چیز سر جای خودش بود بهترین صورت چیزا با هم مناسب اون طوری که باید چون که هرکس از آن خورش پرداخت وقتی خوراک تموم شد گفت فردوسی یه بیتی داره که باره هم تکار میکنه چون نان خورده شد گفتم یه دفعه که هنوز افغانه میگن نان خورده یعنی قضا خورد. نان خورده شد یعنی قضا چون خورد. نان خورده شد مجلس آراستند می و رود و رامشگران خواستند این همون میگه با... بعد از این که چون که هرکس از آن خورش پرداخت می نهادند و چنگ ساخته شد از زدن رودها نواخته شد رود اینجا طبعا چیزی حالات موسیقی نوش ساقی و جام نوش کوار گفتم یه بار که نوش معنی شیرینی زند. و باز گفتم که شیرین زن خسروپرویز و در زبون هرمنی بشه میگن آنوش یعنی شیرینی نوش ساوی یا جام نوش بوار گردرمتر کرد ش را با بازار. شراب، یه خود پدید آده عشق دیگه نشات و هیجان اینا رو زیاد می‌کنه. یه خود پرده شهر و بر برمیداره اگر کسی چیزی هم در دلش داشته، را بازه کرد همدستی ترک من یعنی این من ای زن اینا خودشون سر سایتی میشون ترک من رحمت آشکارا کرد هندوی خیش را مدارا کرد هندو الان گفتم ترک هم به منی بهترین نوعی کنیزه اینکه معشوق اینکه می که طور که من رحمت آشکارها کرد هندوی خیشتا مدارا کرد رغبت هفزود در نواختنم دستی سرم کشید مهربان شد به کاف ساختنم حالا ببینید کرد شکلی به غمزه با یاران تا شدند از برش پرستاران یه جوری اشاره کرد که اون خدمتگزاراینا هم برند و دوتا رو تنها بذارن. قلوتی آنچنان و یاری نغز تابم از دل در افتاد به مغز میگه اون حرارتی که در دل داشتم که اونجا پنهان بود آمد در مغز یعنی آشکاره شد دست بردم چو زلف در کمرش در کشیدم چو آشقان به برش پشتار میدهدن گفت هان هان عدات تنبیه. ی نی مواظب باش گفت هان وقت بی نیست شب شب زینهار کاری نیست گفتم زینهار ونی امان یعنی پناه زینهار دادن یعنی پناه دادن و امان دادن زینهار خوردن یعنی قول خود رو شکستن میگه که امشب شدی تو زیر قولت بزنی نیست شب شب زینهار کاری نیست گر قناعت کنی به شکر و قند گاز میگیر و بوسه در میبند به قناعت کسی که شاد بود تا بود محتشم نهاد این ارز کردم این تن اصلی داستانه وان که با آرزو کند خیلشی افتد آقابت به درویش درویشی یعنی فقر و بیچیزی البته معنی تصوفم هست اون معنی سانویشه معنی اولش درویش یعنی بیچیز و این با کلمه دریوزه و دریوزه کردن درویش با دریوزه از یکیشه هست درویز درویز و درویش بوده و درویز شده دریوز و دریوزه میگه من گفتم من طاقت ندارم گفتمش چاره کنزه بحر خدا کابم از سر گذشت و است و آب گستم گذشت خارم از پام گذشت خار از پا گذشتن شما نمیدونید چیه ارز کنم که یه نوع خاری در بیابانهای مکه هست که بشنگه هم خار مغیلان. مقیلان مخفف ام قیلان قیلان جمع قومل ام قیلان یعنی مادر قومل ها کم کم ام قیلان شده مقیلان و در های عرب هست که قول زیر این های خار بچه می‌زن بیابون بیابونیست که سال‌ها می‌گذاری یک قطر بارون و این ریشه این خار باید بره چندین متر تو زمین تو یه ذره آب در بیاره به همین دلم به جای برک خارهای نفتیز داره به همین اندازه انگشت من و سخت به قدلی این خارا سخته که اگر کسی باشه بذاره روش از تخت کفش میاد بالا از کف پام میاد بالا از پشت فاسرش میاد. خار مغیلان خاری که پا رفته و خار مغیلان و خار مغیلان این و میگه خار از پام گذشت یعنی پام سراخت هنگان آن بیران. گفتمش چاره کن زه بحر خدای کابم هم از سر گذشت و خار از کار هست زنجیر زلف چونقی گرد من ز دیوانگام زنجیر گرد در به زن... زنجیر کن برای که اگر من زنجیر نکنیم من مثل دیوانگان آشوب را میدیسم در به زنجیر کن تو را گفتم تا چو زنجیدیان نیاشوکتم یعنی تا من مثل زنجیری به معنی دیوانه خطرناکی تا چون زنجیریان نیاختن شب به آخر رسید و صوب دمید سخن ما به آخری نرسید میگه هنوز صبح نشد و حاضره حرف میزنید میگه آه صبح داره میشه ما حرفا مثلا آخر فیده کشی گرکشی کشی جانم از تو نیست دارید ایگنک ایگنک سر آنک آنکی، این همه سر کشیدن از پیچیست گل نخندید تا هوا است. جوی آبی دو. آب جو من خاکیو، و آب دست شو گتمن تشنه ای را که اون گلوده توست یعنی گلوچی میذاره در تو که ببری تشنه ای را که اون گلوده توست آب درده آب در ده توست ندهی آب من بقای تو باید یعنی نمیخوای بدی هم شما کم بقای شما باشه ندهی آب من بقای تو باید آب من نیست خاک پای تو باید خاکی را بگیر که آبی برد فرض کن که یه خاکی حالی لیوان آبم برد دوری نمیشه که آبجویی در آبجویی مرد قطره ای را به تشنگی مد و ای را به قطره ای بنواز. نباست رتبی در فتاده گیر به شیر اینجا دیگه درست از وسال دم می رتبی در فتاده گیر به شیر سوزنی رفته در میان حریر اما اگر میفرمایید نه گر جز است کار تاخیزم خاک در چشم آرزو رویزن می میگه اگرم غیر از اینه بفرمایید من مرخص بشون یار در زم نازکشم هست میخواد ولی نیاز عاشقانه رو میخواد زود آشغ فیلی با عجله رو دوست نداره در این حالم نمیخواد قرد کنه بره. این است که میگه اگر چیزه من برم مرخص بشن مرخی انگاشتم نشست و پرید نه خراختاده شد نه خیلی کرد نه خانی اومده نه خانی رفته فرض میکنی که این ما میشه س نه و خری افتاده نخ که پرشلیطور نشدیم. می زمین نه چ بنده مرخص میشه. پاسخ هم داد کمشبی خوش با باز بود میگه امشب و فعلا خوش بتر رو. نل شب۲ دوده در آتش گذاشتن جز کارای جادی. که قرنها ادامه داشته تا روزگار ما و حتی همین الان هم ادامه داره که کسی یه مسافری یه کسی در سفر داره یه دور ای داره یکی از کارهای جادویی که می کردن یه دعاهای چیزهای روی نعل می کندن یا می نوشتن یا ترکیب میدادن، و گفتن که این نعل رو که بگذارن تو آتش و این داغ خوشه دل اون آدم شور می و به هر تصیبیت خود چون حافظ میگه که در نهان خامه اشرت در نهان خامه اشرت سنمی خوش دارم که از زلف و رخش نهل در آتش دارم یعنی رخش مثل آتش زلفش هم مثل نعل. میگه نعل در آتش من نل فروس و, اوس و در نهان خامنه اشتت تنم این خوش دارم که از سر زل نل در آتش دارم نل می زاشت بندر آتش که گمگشته بیاد میگه تو امرو بزنید مرد و بزنی تو آتش باشید پاسخ هم داد که امرو باش نل شب دیز در آتش باش شب دیز یعنی هست بسیارن هست میگه مثل شب سیار در شبی این خیال گردی دور یا از شم جافدانی نور اگه یه ذره یه رو ذره جمع بکنی و این خیالات باطل به این سرعت به خودت راندی ندی وضعت خوب میشه چشمه ای را به قطره ای مفروز که این همه نیش دارد آن همه نور در یک آرزو به خود دربند همه ساله و خورمی و یه چیزو فراموش کن. باقی همه در اختیارت مرد حسابی بوسه میگیر و زرف میانداز نرد رو با کنیزکان می باز، نگفتم بازم تونه هر شرکی هست حاضر برو اون کار بخواه بکن با میگیر و زرف میانداز نرد رو با کنیزکان میباز باغ داری تو ترک زاق بگو مرق با توست شیر مرق مجون میگه مرق که در اختیار تو چونه شیر مرق ازش میخواه می‌بینید شیر از که‌ای هست از 800-900 سال کام دل هست و کامرانی هست در خیانتگری چه آریده هست امشب امشبی با شکیب، ساز و مک بوش دل به نهبر وظیفه‌ی شب دوش در همون مقرره‌ی دیشب، امشب غازی قاضی باش من از این پایه چون به زیرایم هم به دست دایم، ارچه‌دین یکه وقتی نوبت کار شد به هر حال من دیر به دست میام اما به هر حال به دست میام من از این پایه چون به زیرایم هم به دست داویم ارچه دیر آویم ماهی از حوضه به شستاری ماه را دیرتر به دست داوی. از حوض ماهی میگه میشه گرفت ولی ماه که هم بگیری یه قطعه و صاحب تو آرنستراکی بیاد ما ماهوی دیرن خب یکنی استرحالی کنیم خسته نمیشتیم مرسی اصلا دارش کنیم بیشتیمی خیلی پنسیو برای ما نمیدید آقای سفر راجب جمعه هم بفرمایید که <ا> جشنی هست <Valisio>. در <سطور> دانشگاه <صف> برخلی که اصاد تو باید بله آقای تو مهاودی مجلسی دارن در بکلی، عصر روز جمعه و مثل که بله هم جمعه ساز یا ضرب یا چیز، یه هست که من درست نمیدونم ولی خرار که مندم اونجا قاری بزنم در واقع نوروز و اینا غارری هرکوی زنم به حال جلسه هست هستد دانشگاه بکلی در دو اینل عصر روز جمعه، هفت ساعت ساعت چماز نمیدونم با تو ولی به هر حال جلسه اونجوری چون گران دیدمش در آن بازی کردم آه هستگیگ و دمسازی. دل نهادم به بوسه چشکر روزه بستم به روزهای دگر باز تفکرده را در آمد تا رقبتم تازه شد به بوس و شراب چون دیگر باره ترک دلکش من در جگردی جوش آتش من کرد از اون لعبتان یکی را ساز کاید و آتشم نشاند باز باری الحق چنان که دل خواهد یار. یاری یار یار. یار. یار. یاری الحق چنان که دل خواهد دل همه چیز معتدل خواهد خوش دلان شد که باشدش یاری اگر بود کاشتی چنان باری رفتم اون شب چنان که عادت بود و اون شبم کام دل زیادت بود تا روز غند میخوردم با پرید است بند روز چون کرد گازر رنگ رنگ رزوار شب شکست سبوی اون همه رنگ های دیگه دور گشت از بساط زینت و زید من نشسته به زیر سربونی فارغ از همدمی و همسخونی در تمنا که چون شب آید باز می خورم با بوتان چین و تراز زلف ترکی بر به کمر دلنوازی درآورم به جگر گه خورم با شکرلبی جامی گه بر ز گل رخی کامی چون شب آمد غرض مهیا بود مسندم برتر از تریا بود شندگه اینچنین به رود و به می هر شبم عیش بود پی, پی. اول شب نظارگاه هم نور و آخر شب هماشیانم هم هور روز بودم به باغ و شب به بهشت خاک مشکین و خانه زرین خشت بودم اقلیم خوشدلی را شا روز با آفتاب و شب با ما هیچ کامی نکن نبود مرا وقت من بود کن نمود مرا چون در آن نعمتم نبود سپاس حق نعمت زیاده شد زقیاز برق از حرف خرمی شستم که زیادت زیادتی جستم چون به سی شب رسید بعده ما شب جهان بر ستاره کرد سیاه سیاه؟ سیاه ام بر سرای سپه تره ماه در کشید به مهر عبروبادی که آمدیزان پیش تازه کردند تازه روی خیش شورشی باز در جهان افتاد بانگ زیبر بر آسمان افتاد بان کنیزان به رسم پیشینه سیب در دست و نار در سینه آمدندان سریر بنهادن حلقه بستند و حلق بکشادند آمد آن ماه آفتاب نشان در برف گنده زلف موش پشان پیش و پس دادت خیش پس رها کن که شم باشد پیش با هزاران هزار زینت و ناز بر سر بزمگاه خود شد باز مطربان پرده را نواب هستند پرده به کار بنشستند ساقیان صرف ارغوانی رنگ صرفت. در ارغوان رنگ راست کردند بر ترنم چنگ شاه شکرلوان چون فرمود کاوریدان حریف ما را زود باز خوبان به ناز بردندم به خداوند خود سپرداندند دندم. پس ما به داستان به کلی در سه کلمه. این است که میگه سی شب متوالی ما همون ترتیب داشتیم اول شب و عبر میامد و پاک میامد و ترتیبات می داد. ما بودیم و عشق کردیم و عشق میکردیم آخر شب هم دست امرو میدهشت دست کنیزکی رو میرفتیم و دوباره پردار به همون ترتیب سی شب ادامه این،, این کل مطلبی در وسطش یک جا میگوید که من زیاده طلبی کرد همین هم اثر من زیاد بود این که بود. ولی من باز دنبال چیز زیاد جستم و نتیجه اینکه بعد اون گرفت داشت <تصفح> حالا اگر یاتونونه یا باشه میگه که گفتم که گفت که گفتش که خیلی حالا تو چیز کنه اینا منم دیدم که که نزگه نمیشه شب دو میگه افسون طلبی رو گذاشتمشه چون گران دیدمش در آن بازی. یعنی من فعلا اوزا جونیست و او در این بازی گرانی میکنه سنگینه کردم آهستگی و دمسازی دل نهادم به بوسه چشکر روزه بستم به روزهای دیگر میگه به همون بوسه قانه شدم و روزم رو گذاشتم که روزهای دیگر افتار بکنم باز تب کرده را در آمد تاب رغبتم تازه شد به بوس و شراب میگه من به دل خودم اینطور قرار دادم ولی می آمد و چیز آمد دوباره من شروع کردم به سرکشی چون دگر باره ترک دل کش من درجه گردی جوش آتش من کرد از آن لعبتان یکی را ساز کاید و آتش هم که من نزدیک الان که یه وقت گردن کشی کنم و یه کاری خودی از این سر بزنه صدا کرد یه دوشیزه ای رو داد دستش که برای آتش ما رو بنشونه ترد از آن لغوطان یکی راساس خاید و آتشم نشانت باز یاری الحق چنان که دل خواهد دل همه چیز مقتدل خواهد خوشدلان شد که با یاری کاش کاشکی، چنان باری خوش آبه حالی کسی یاری داشته باشه و اگر قرار یاری داشته باشه کاشکی به همین ترتیب یعنی همه چیزش معتدل باشه رفتم اون شب چنان که عادت بود بانشرم کامدل زیادت بود دوسترم بهش خوش گذشته بچه تا اگر روز قند میخوردم با پری دستفند می‌کردم روز چون جام کرد گازور شوک گازور رخش رو میگم قدیم رفتار میم به کسی شغلش رخشویی بود. هم که حالا می نه هست اون تا اون وقت ای این ماشینا و های که نبود می‌وردن لب رودخونه خونه لباس ها رو پیس میکردن یه مقداری هم درش چوبک و اشنون اینا میریختن و یه چوبی داشتن به نام کدین که میگم برای که تو ادبیات آماده علا قصده رخشوری نمیخوام بگم <تصفيق> چوبی داشتن به نام کودین. چون این رو بعد از اینکه خوب اینا رو با چوبه که ناخیست میکردن بعد میذاشتن جامعه ها رو روی هم انقدر بعد با اون چوب میکوبیدن زیرش هم سنگ بود و معتقدم که به این ترتیب اون چرکا که خیز خورده از جامعه میره بیران اینکه که یه بیتی داریم که تو پاک باش و مداره برادر از دست پاک زنن جامعه ناپاک گازوران بر سنگ یا اینکه که دست میزدن به سنگ اینکه این چرکش بیاد بیرون و بعد سفید میشوند لباسی که کسی اون وقتا هم هر یه روزی رو دوتا پیرند یا روزی رو یه که عوض نمیکردن و بنزن تویشه قرر و قرر و مشکل روشن. اینقدر بود که رنگش تغییر میکرد از میزن دست گازوری دو. <تصفيق> اینی که میگه که روز چون جامعه کرد گاز و شو یعنی وقتی روشن شد روز رنگ رزوار شب شکست سبوی یعنی سبوی رنگشو شب شکست این روز شد. اینجا در مورد رنگ باید بگم که یه نقاش داریم نقاش اونه که معمولاً با رنگ روحان کار میکنه و روی دردی باکتار میکنه یا،, یا نقاش منی هنروند یه رنگ کار داریم رنگ کار است که وسایل چوبی غیر منگول یا گاه منگول اینجا ها رو یعنی رنگ پیر روغنی رنگ لاک الکل کسی که کار میکنه میشه رنگ کار. یه رنگ رزن داریم، رنگ رز کسی است که لباس و پارچه و اینا رو رنگ این ستا با اینکه کارشون هر سه با رنگه اما اسمشون فرق داره. نقاش است و رنگ کار است و رنگ رز. و میگه که شب مثل رنگرزان سبوی خود خودش شکست یعنی رنگی دیگر کار نبود روشن شد هم باید روز چون جامعه کرد گاز شوی رنگ رزبار شبشکه از سبوی آن همه رنگ های دیده فریب دور گشت از بساطه زینت زیب همین رنگ من نشسته به زیر سربونی تارق از همدن میگو همسخونی در تمنا منظر شب نشسته ها آقا کارش مرتب بود و روزاش خوب و روزام نشسته بود شب بیاره در تمنا که چون شبایت باز میخورم با بوتان چین و تراز یکی از های حوث خیزم که من یادم نبود اونجا بگم ترازی ترازم مثل حسار و خمار و خلق و یخما و حسار اینها اونم ترازم هست تا محلق در تمنا که چون شبایت باز میخورم با بوتان چین و تراز زلف ترکی برا به کمر دلنوازی در آفرم به جیگر بشینم و گه خورم با شکل لبی جامی گه بر آرمز گلروخی روخی کام میگه خوشمختان شبان که میرسید همه این آرزوی ما می شد درست بود چون شبانت قرص محیا بود مصند هم برتر از سورایا بود سورایا رو گفتم پروین روش میگن سورایا سورایا میگن پروین رو میگن در برژ صوره نزید صور هم سورایا یا رو می در افق آسمان چند گاه این چنین به رود و به می هر شب هم عشق پیده میگه هر شب مدت ها به همین تقدیر بعض من بود اول شب نزارگاه هم نور با آخر شب هم آشیانم هور روز بودم به باغ و روز بودم به باغ و شب به دهش. خاک مشکین و خانه زرین پشت بودم اقلیم خوشدلی خوش را شاه میگه من شاه مملکت خوشدلی بودم یکی از این بهتر چی روز با آفتاب و شب با ما هیچ کامی نم کان نبود مرا میگه هیچ مرادی وجود نداشت که هم همه چی داشت منطقه بخت من بخت من بود کان نمود مرا یعنی بخت بد من بود که این بدبختی رو من نشوندار چون در آن نعمتم نبود سپاس بگه چون باز افزان تلبی کردم و سپاس اون نعمت رو ندانشتم حق نعمت زیاده شد ز حق نعمت بیش از اندازه شد برق از هر حرف خور رمی شستم که از زیادت زیادتی شستم بگه با خیلی زیاد من بود اون چیزا من به جای که فکر کنم مرتی که پهلا این وضعی که هست که هیچ کسی اصلا همه آرزوش دارن تو داشته باشی عوض اینکه اینه بگم به خانه بشم به این اومدم بازم زیادتر بخوام ورق از حرف خور شستم که از زیادت زیادتی جستم چون به سی شب رسید بعده ماه سی شب با هم بودیم شب جهان بر ستاره کرد سیاه هم بر این یثپرطوره ماغ درکشید به مهر نصف فراورسیدن فرارسیدن اابرو بادی که آمددیزان پیش تازه که تا آمددیزان پیش تازه کردند تازه رو یه پیش میگه باز همون ابر اومد و باز هم باد و باز هم تحتی میداد و شوبشی باز در جهان افتاد بانگ زیبر بر آسمان افتاد بان کنیزان به رسم سیب در دست و نار در سینه نار در سینه استانشونه سیب شاید کنایه از زنختانشون باشه چون زنختان هم رو به سیب تشکیه میکنن در... یا اینکه سیب دستشون مده سیب در دست و نار در سینه آمدندان سریع به این به همون ترتیبهای شدیش راست و درستاند و حلقه بستند و حلق بود این یعنی چون که هم به آواز می اومد آن ماه آفتاب نشان بانوی بانوان در برف کنده زلف مشکشان شام ها پیش و پس به عادت قیش ها کن که شام باشد پیش این, این خیلی قشنگه به عادت پشت سر و پیش روی خانوم شاما میوردن میگه پشت سر بر کن که شام پیش مقصود این که شم اصلی خود اون بانوون پسترها کن که شام باشد پیش. یعنی اصلا شم و بلش کن شمعه اصلی خود و با هزاران هزار زینت و نازر بر سر بزده خود باز مطربان پرده را نواب است پرده یه معنیش آهنگ موس، مطربا پرده به گردان رو ما رو حافظ دیم. مطربا پرده به گردان بزن راه حجاز که از این راه بشد یه آراز ما یاد نکن یعنی کوتش رو عوض اون زههایی یعنی هایی هم که دسته تار و ستار و سازه های مزرابی بسته هست اونها رو هم بهش میگن پرده مطربان پرده را نوابستن نوابنی آهنگ باز مطربان پرده را نوابستن یعنی مشغول شدن به کار زدن و پردداران به کار بنشستن باز پرددارم به نظر من جنی موسیبیدانم کسانی که اهل پرده ساقیان صرف عرقوانی رنگ راست کردم بر طرح نام چه صرف اگه آتومشی نیدنم سر این کلاس یعنی یه نه یه مئه لعل داریم یه مئه عقیق داریم و یه دوردی گفتم می لعل اون قسمتیست که مثل شهرابایسی حالا تو شهرابایسی ها اینا رو الان با ماشین به قبه گریزه از مرکز اینقدر سریع ساخت میکنن میرن میسر قدیم که اینطور نبوده بعد انقدر بزنم توی خمره بمونه ذرات بسیار ریزی بوده اینا ترمیشون و اینا ها طول میکشون و گاهی فرصت نداشتن انقدر بذارن اینه که اول قسمت بالای خم انقدرش صاف صاف میشه مثل این شرابای امروز زیرش یک کمی تار بوده اون بالایی رو میگن میه لعل یعنی کاملا رو عقیق. دوبامین رو عقیق تار شفاق نید می. اون می لعل و سترف هم می سر یعنی همون میلاد لد در چیز هستش که مسکمال سعدی است می صرف وحدت کسی نوش کرد که دنیا و فرا. می صرف وحدت می صرف این اون شراب کاملا ساخ شده که هیچی غیر از شراب بریش ساخیان صرف ارقوانی رنگ راست کردن بر پرانمان چند همراه نقمه ساز اونا هم صرف رو به گردش در آوردن در این موقع شاه شکر لبان چنان فرمود کابری دان حریف ما را زود بانوی بانویل هم گفتیم دوست ما کجاست از پیزش نیست فرشترین بیاریم. باز خوبان به ناز دست ما رو گرفتن با عزت و اطراب و خدمت کن به خداوند خود سپردن خداوند این صاحب مالک دارو ما رو دست صاحبیم چون مرادید مهربان بر کار کرد بر دست راست جایم را راست کردن جا یعنی آماده کردن و فراهند کردن اصلا راست کردن و می آماده کردن حافظ میگه که حافظ که ساز مجلس اشاق راست کرد کالی مباد عرصه این بعض داهج یعنی ساز و میزوند راست کرد یعنی میگه می که بر دست راست است جا برا من فراهند کرد نزدیکترین جا از نظره ارجو قرب از نزدیکی به سلطان دست راست بعد دست چپش یعنی وزیری که دست راست پادشاه نمی‌شه احترام شو عزتچنا از وزیری که سمت چپینیشه بیشتری یعنی ارشد از اون اینی که میگه خانومم در کمال مهربانی بران شد دست راست خود شاه منداد یعنی دیگه بهترین جای ممکن رو داد به من خدمتش کردم و نشستم چهار. خدمت کردن یعنی تعظیم کرد خدمت کردم یعنی بهش تعظیم کردم خدمتش کردم و نشستم شاد یه بازفیلم یاد هندسون آرزو آرزوی گذشته آمد یاد خان نهادن باز بر ترتیب بیش از اندازه های قریب چون زخان ریزه خورده شد روزی می در آمد به مجلس هفر بعد از نان خوردن مجلس آرستانو می اومد و از کف ساقیان دریا کف در فشان گشت کام های سرد اولا یکی از جام هایی که توش می میخوردن خود صدف صدف گوشماهی رو توش شراب میخوردن خاقانی میگه ساقی به هوش باش که جام صدف دهی بحری دهی که توه قم از جا برفت کند یک گوشماهی از همه کس ده مرا تا بحر سینه جیفه یه صدا برفت بنابراین صدف خودش جام میشه یک دوم اینکه که میگه که تاقیان دریا کفت آمدن و جام های صدفی که داشتن توش پر از دور بود یعنی پر از می. من دگر باره گشت باله و مست یه ما فیلمون یا هندسون کردن رسند، ظلفه بود چون رسند گرفته بده باز دیبانم از رسند رستند من دیبانه را رسند یه هایی که در درون داشتم اینا از بند و پارک کردن و اومده شروع کردن زیاد کردن جروع. چون. اوزیاد کردن کاشم جای باری و حساس میکشه این است که فعلا بافشویی میذاریم برای اناله بعد از ای فعلا پچ ها سیاب بذاریم به کار خودش مشغول باشه تا بعد از ای